اگر کسی یکی از همسرایش بیشتر دوست داشته باشد و موقع تنهای بیشتر ملاعبت کند گناهی دارد یا خیر در, ز... در ظاهر ادالت دارد اگر ادالتش کامل هست نفقی هم کامل می دهد و مبیت هم شب تقسیم یک شب اینجا یک شب اونجا اشکال نداره محبت کسی بیشتر باشه. محبت کار قلبی هست و قابل کنترل نیست اگر محبت کسی بیشتر بود بنابراین گناهکار نمیشه اگر پیش کسی بیشتر هم نیاز بشری خودش را براورده کرد هم اینجا هم گناهکار نمیشه به که که خانو اول را کلان ترک نکرده باشد.